فصل بیست و در حالی که عیسی از معبد خارج می شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودن. عیسی به آنها گفت، آیا این بناها را نمی بینید؟ یقیم بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزع آمده و به طور محرمانه به او گفتند به ما بگو کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود ایسا جواب داد مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد زمانی میآید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید، هراسان نشوید، چنین وقایی باید رخ دهد، ده اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی‌ها و زمین ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیاری برخواهن خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت بهقدری زیاد میشود شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هرکس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این مجده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد، تا برای همه ملت ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودی هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانهی باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید، و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزا برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردن. توجه کنید من قبلا شما را آگاه ساختم، اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامه از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا ای باشد لاشخوران در آنجا جمع می شود. به محضان که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریخ خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید، که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می‌آید شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کند از درخت انجیر درس بیاموزی هر وقت شاهیان جوانه می‌زنند و برگ می‌آورند شما می‌دانید که تابستان نزدیک است به همان طریق، وقتی تمام این چیزها رو میبینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بیم خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بیم نخواهد رفت. هیچ کس از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن میخبرند زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود در روزهای قبل از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت مردم می‌خوردند و مینوشیدند و ازدواج میکردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود از دو نفر که در مزرعه هستند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند و از دو زن که دست آس میکن یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید اگر صابخانه میدانست که دز در چه ساعت از شب می آید بیدار میمان و نمیگذاشت دز وارد خانهش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید. زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیری آنان را بدهد. خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با می ساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد شد در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد